می گفتن جو درآورده یا جو داره یعنی مثل اینکه موجود دیگه در درون وجود داره داره اینو می‌بلعه غذا رو می‌بلعه اما برنامه اینجاست و حالا بعضی هم در واقع اینطوریه که چقدر می‌خورید داره میترکی انقدر نخورد داره میترکی میترکی اینجا هست و اون داره خودشو چیز می‌کنه که داره میترکه لذا وزنی نداره ولی هی احساس میکنه که داره منفجر میشه احساس میکنه که داره منفجر میشه و اصلا اشتها نداره خب توی این ارتباطی که گرفتیم چند نفر الگوی خوراکشون تغییر کرده یعنی یا کم اشتها شدند یا به شکلی خب برای بنابراین در مسئله در فرزم مثل چاقی این حوشمندی میاد اینجا دست میبره این نرم امزار رو چیکارش میکنه؟ اصلاحش میکنه بنابراین روند این موضوع متوقف میشه خب اما فرد یه اضافه وزنی رو اینجا داره یه واقعیتی که یه سری چربی اینجا داره حالا اینو چیکارش باید بکنه؟ یعنی اون اومده متوقفش کرده اما از حالا به بعد این اضافه وزد بالاخره به یه با ورزش با با هرچه هست هم باید کمک بگیریم تا اون وضعیت ایدئال فراهم بشه بعضیا تصور میکنن که این حالا دلیل نرمبزاری دلیل غیر نرمبزاریش هم اینه که عدم تعادل هورمونی مثلا اختلالاتی که رو تیروئید هست روی قدرت مختلف هست این میتونه عامل چاقی باشه و این مسئله میاد اون عامل چیکار میکنه؟ اصلاح میکنه. درست شد؟ اما بعد از اینکه اصلاح کرد تازه چی شده؟ متوقف شده تازه. یعنی روند چاغی بی رویه رو چیکار کرده؟ اومده متوقف کرده. اما یه چربی اینجا تلمباره. خب حالا اینو چیکارش باید بکنیم؟ بعضیا تصور میکنن که منظور از این قضیه و تاثیرش روی مثلا بعض اینه که ما اینجوری بکنیم بعدون یه دفعه اینجوری آب بره و یه دفعه اینن که چی این نه این میاد اجلا کنه اما اضافه وزن حالا ما باید یه کارش بکنیم ولی اگر یه کارش کردیم دیگه دفعه بعد این روند نامناسب به اصطلاح سوخت و ساز ناقص و اینا رو دیگه چی نداریم یا اون اشتهای بی رویه رو دیگه نداریم همون که الان سآل کردیم توی مسئله اشتاها دیدیم که آره یه تغییرات ایجاد شده جانم جانم بله، حالا بحث توی میکروفون به صحبت گزارشونو بدیم تا من بگم در شده پای موضوع فرق میکنه گزارش بفرمایید روشن کنین تا انت. من اینطوری بودم که اشتاهای خیلی زیادی نداشتم یعنی مثل همه تقریباییت نورمال ولی خیلی اضافه وزن داشتم اما بعد از گرفتن تشترشو دفاعی 12 کیلو وزن اومد کنیم بله، ما البته بیشتر از اینام داشتیم 17 کیلو و... و اینا ببینید ما اینجا داریم راجب درمانی صحبت میکنیم ولی علال دیگری برای همه نابسامانه که اینجا صحبت میکنیم داریم یکیش در تشترشو دفاعیه در تشترشو دفاعی یکی از عوامل چاقی به اونجا ارتباط پیدا میکنه یعنی یه عامل درونی داره ما رو وادار میکنه اشتهای کاذب داشته باشیم و خلاصه خیلی ماجره هایی که چون نمیخوام زیاد راجب تشش رو دفاعی توضیح بدم خب <وصیح> بله چون نمیخوام راجب اونجا ولی این تجربه رو داریم که این تجربه هست که مثلا تشش رو دفاعی دادیم 17 کیلو کاهش وزن پیش اومده یا ایشون که میفرمان 12 کیلو کاهش وزن اتفاق افتاده اینو ما داریم در اونجا مربوط به مسائل و دلایل اونجا میشه خب در مورد بیماری نرم بیماری دادگاهی بیماری های دادگاهی یه توضیح میدیم خدمتون رفتار های دوگانه این در دور دو راجبش مفصل کار عملی داریم ارتباط داریم و صحبت داریم رفتار دوگانه مثل تظاهر و وانمودسازی سرکوب، سازش، تحمل و این دو چیزها منجر میشه به حرص خوردن، خودخوری، در اون ریزی حزن و اندو و اینجور چیزا حالا رفتار دوگانه چی هست؟ این تظاهران موسازی ببینید ما برای انتباغ با پیرامون خودمون رفتارهای دوگانه داریم مثلا یکی خوشمون نمیاد ولی به واسطه خوب نسبیت و رابطه و اینها بهش میخندیم میریم میایم تعارف میکنیم نمیدونم اصرار میکنیم پیشمون بیا ولی خوب در واقع دلمون نمیخواد سر به تنش باشه خب از اینی که داریم این کارو میکنیم مثلا سر کارمون میریم از رئیسمون خوشمون نمیاد ولی باش خوشو بش میکنیم تظاهر میکنیم برام که میره که خب یعنی یه جوری دلمون میخواد خفش کنیم ولی در واقع یه جوری نشون میدیم که اون فکر میکنه که خیلی اندازه بهش علاقه و اراده داریم خب اینها باعث میشه که ما هرس بخوریم هرس میخوریم مثلا در محیط زندگی چیزی مطلوبمون نیست ولی داریم می میکنیم محیط کار اینجوریه داریم یه جایی امیال خودمون خواستای خودمون رو سرکوب میکنیم که با محیط سازش پیدا بکنیم بتونیم با محیطمون کنار بیایم، با زندگیمون با کارمون با دوستامون بالاخره با محیط کنار بیایم. درست شد لذا یه جایی اگه به ما باشیم و میخوایم هر چی عدن اون در میاد به یکی بگیم ولی خب با یه جوری باید میسیم که ادب و نزاکت و به صلاح حفظ زواهر رو اینها شده و لذا مثلا یه جوری هست که ما یک پرستیج و یک چیزی رو برای خودمون چیگار میکنیم معرفی می‌کنیم که با این پرستیجی که معرفی می‌کنیم داریم در محیط زندگی می‌کنیم و ما رو میشناسند. مثلا می فلانی آدم خونسردیه آیا واقعا خوم این این چیز دا رو بردارن ببینیم که این واقعا خوم سرده. این مرعاددا رو بردارن ببینیم که واقعا خون سرده. فلانی آدم با نزاکتیه این مناسبات رو بردارن ببینیم که واقعا از دور بر بر میدارییم و افکار دوره اینه, اینه که آره. اینو داریم بعد دونیم که چطوری میشه چی میشه بعد خب اما وقتی اینا خارج از ظرفیت ماست خارج از ظرفیت ما میشه ما دوچار هرس خوردن خودگوری در اون ریزی نیمتونم حزن و اندو اینا میشیم اینا در واقع وقتی میگیم هرس, هرس و اینا در واقع انرژیه ما به اینا میگیم انرژی پوتانسیله انرژی پتانسیل منفی یعنی پتانسیلش هم به قاطعه رو هم تلمبار میشه مثل فنره که جمع میشه جمع میشه جمع میشه بعد یه اتفاقی میفته خب انرژی پتانسیل منفی منفی بودنش هم به علت اینه که قرار یه ضربهی بهمون وارد بشه این وقتی به یه حد نسابی میرسه ارجا میشه به جایی به نام ما بهش میگیم دادگاه بیجه. دادگاه ویژه در ناخداگاهی ما بهش اشراف نداریم ما یه سیستم خودپاداشدهی داریم در ناخداگاهی حالتی اینا تعبیرات ماست اینا نظری است که خودمون داریم برحال در دادگاه ویژه این پرونده ما میره و در اونجا محاکمه صورت میگیره و صدور حکم میشه اساس کار این دادگاه ویژه برای این منواله که مگه انسان اومده رو زمین که هرس بخوره مگه انسان اومده رو زمین که در حزن قرار بگیره مگه انسان اومده که خودخوری کنه مگه انسان اومده هر چی ما توضیح میدیم بابا اخر میدونیم این چیه اینجا ما رو درسی داشتیم اونجا نمیدونم پرام داشتیم گوشیشون در این دادگاه به نیست صدور حکم میگه انسان بر این چیزا رو زمین نیومده صدور حکم بیماریهای روانتنی یا سایکوسوماتیک یا به تعبیر خودمون بیماری های دادگاهی خب یعنی بیمار روانتنی کسی است که در دادگاه ویژه محاکمه شده و محکوم به حساب میاد و داره حالا دوره محکومیتشو رو طی میکنه. حرس خورده خب حالا اینم اینم خب حالا بعضی از حکمایی که در این دادگاه سادر میشه چیز داره نگاه میکنه میگه این بوده خب میشه این مثل همین چیزهایی که بعضی قضات دارن بعضی مواقع خودشون یه تصمیم میگیرن مثلا فرض کنید که این هرس و, هرس و اینا خب میبینید زخم مده عمدتا زخم مده میشه. اگر از نوع تنش های خاصی به قلب میزنه اگر از نوع حزن به تیروید میزنه اگر نوع تضاد به کلیت میزنه مثلا فرصمون سرکار خانم که فرمودن کلیت داشتن و اینا خوب شده ما اگر بریم در مورد مثلا ایشون بیوگرافی شونا چیز کنیم بینیم که ایشون تضاد خلاصه تضاد محور اساسی ایشون و زندگیشونه اینجور, اینجور بوده یا نبوده بله؟ آره ببینیم یعنی اگر ترقیق کنیم بینیم که تضاد حالا این تضاد باید بازش کنیم که یعنی چی؟ چه جوری این تضاد محور اساسیه و... یعنی با کسیشون ممکنه چیز نباشه مستقیما ولی تضاد چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا این دادگاه میگه که خیلی خوب این تضادا این جوریه بنابراین روده بزرگ درم اینا کلید گربانگیر میشه جان بله ببینید ادامه کار، ادامه، ادامه، حالا یه چیز رو آورده رو حالا این سردردتون ربانتنیه، نمیدونم چیه، اینه که آورده رو مربوط به اینجا هست، به اونجا هست، شما ادامه بدین کار تموم بشه بعدا رو گزارش مثلا میشه دقیقا اینها رو خب، قبول کردین تا اینجا یا نه؟ خب، این تجربهش که دو این قضیه انسان میتونه داشته باشه بنابراین در اینجا یک چیری چیدای مشخصه یعنی مثلا وقتی زخم می است شما میتونید تا یه کاراکترش کاراکترشو تشکیص بدید که خب این آدم خودخوریه خب اگر نکتونم تیرویده شما میتونید تا یه حدید چیکار کنید بتونید که این محورش حضن و از این موجرات و حالا اگه قلبه چطوری؟ بل بعضی از موارد دیگه میبینید که به هر جای مثلا دستش درد میکنه هر آزمایش ازماش میکونن اینا که هیچی نیست اصطلاحا میگن عصبیه عصبیه همینه خب یعنی همین روانتنی یا به عبارت اینا اونم میگن بیماری های این عصبیه خب گردنش درد میکنه میگن این عصبیه این دونم یه سری چیزها رو همجوری میگن که عصبیه خب در ارتباطاتی که شما برقرار میکنید روی این موضوع کار میشه اما این موضوع از موضوع سرپند جسمی کمی مشکل تره اگه یادتون باشه این نمودارا رو کشیدیم یادتون هست که گفتم شاید دو هفته یه هفته بودیم یادتون رفته باشه میبینیم که اینجا ما مقاومت دادگاه ویژه رو اینجا اگر یادتون باشه خاطرتون باشه که هست ما مقاومت دادگاه بیژه رو چی بود داشتیم دادگاه ویژه در مقابل فرار محکوم نشون میده ما شفاعتش میکنیم میارمش بیرون اون دوباره میکیشش تو دوباره ما میاریم بیرون شفاعتشون میکنیم و هر بار یه خورده دادگاه ویژه نمتر متقایدتر میشه تا اینجا دست از سرش دیگه برداره درست شد یا نه؟ حالا بعضی ها فکر می که این روش ها بیشتر برای بیماریهای های عصبی خوبه همین روان این ها در حالی که ببینید این مشکل تر از جسمی جسمی راحت تر درمان میپذیره. از نظر سهولت در ولی اول جسمیه بعد روانیه بعد روانتنیه بعد ذهنی درست شد؟ خب پس این هم در مورد بیماریهای دادگاهی در مورد این ناخداگاه، ناخداگاهی کارهای زیادی انجام میشه در اون از جمله حالا همینطوری توضیحات چیز بدیم از جمله بحث اتوماسیون حرکات یعنی حرکاتی که دامنه ثابت داره حرکاتی که تکرار داره در این در حافظه اینجا سپرده میشه بعد به ما کمک میکنه یعنی مثلا یه کاری مثل تایپ خب مثل تایپ فرضاً ابتدا به ساکن ما تا یه جای رو پیدا، جایی رو یه حرفی رو پیدا کردیم بار اول که نشیزیم تایپ کنیم مثلا یه دقیقه طول کشید بعد حرف بعدی حرف بعدی در این اثنا هم اینا داره سپرده میشه به این حافظه و بعد از اینکه تکمین شد دیگه فرد بدونه که ببینه چیکار میکنه؟ بدونه که ببینه یا دنبال جای حروف به گرده دستش خود به خود به سمت این حروف میره یا مثلا رانندگی در رانندگی بعد گوشش با صدای موتور، دستش با دنده پاش با اون همه اینا با هم همه میشه و خود به خود دیگه دنده رو عوض میکنه ترمز گاز، کلاش همه این چیزا رو خود به خود چیکار میکنه؟ انجام میده و مثلا در خط تولیدی مثلا یه بسته بندی کارگری یک کاری رو تکرار میکنه با دستش مراد مرتبه دیگه بدون نگاه کردن میتونه با چشم بسته اون کارا رو چگاه کنه؟ انجام بده خب اینجا مهارت مهارت از اینجا ایجاد میشه مهارت از این بخش ایجاد میشه مهارت چیزی مستقل از حالا دی خداگاه شده چون خود به خود انجام میشه میشه مهارت مثل مثلا یه بافندگی یه مثلا بافندگی چیه نمیدونم گلدوزی نمیدونم حالا این میل زدن و با این کامب بافتن و از این چیز چدا دیگه اولش که اینتون اینی براز مدت کار میشه دیگه اتوماتیک مثل مثلا غی بافیه خود به خود این داره چیکار میکنه؟ هدایت میشه یه دوم اشتباه نمیشه. درسته یا نه. حتی در حینش صحبت میکنیم می کنیم حرف راجبه خیلی چیزها خب؟ این ولی حواس اون پرده میشه. این کار خودشو چیه؟ کار خودشو می کنه اون کارم مستقل هست خب، بگذاریم دیگه از مسائلی که اینجا صورت میگیره نرم نرموزار کاراکتری کاراکتر فرد در, در اون نوشته میشه. نوع خیلی از سیدهای مسائل رفتاری خیلی از مسائل ما از چی به ترسیم از چی خوشمون بیاد از چی چیزی رو طالب باشیم نباشیم اینا رو از دوران بچگی در اینجا ثبت و زبت میشه حتی مسئله جنسیت ما مسئله جنسیت ما هم در اینجا توی این برنامه نمیشته میشه این برنامه که نمیشته میشه ممکنه با فیزیک ما مطابقت نداشته باشه و به طور غیر مستقیم برنامه نوشته بشه که با جنسیت ما مقایرت داشته باشه. فرا به عنوان مثال به یه بچه به دختر بچه میگنی شکل باباشی. هرکی میرسی میگه این شکل باباشی این شکل باباشی یا به پسر بچه مین این شکل مادرشی این شکل مادرشه و این شکل مادرشی اینجا داره چی میشه؟ ثبت میشه این بحث پردازش میکنه از اون میدونه که مادر معنسه پردازش میکنه لذا دو تا چیز وارد میشه این شکل مادرشه مادرم که معنسه پس این فرد معنسه اینجا نوشته میشه که تو معنسی اما فیزیکش میگه چی؟ میگه مزکره حالا ناخداغا به تصمت تو پردازش و لاژیکی که اینجا ناخداگا اون به جنس مخالف تمایل داره یعنی اینجا مؤنثه به مزکر تمایل پیدا میکنه در حالی که فیزیکش مزکره و یا بالعکسش لذا پدیده همجنسگرایی ممکنه حالا دلایل متعدد داره در داتچشو دپایی در جای دیگه این یکی از دلایل دلایلی که نرم ابزاری. اینجا عمل میشه فرد نمیدونه چرا به هیچ عنوان نمیدونه که برای چی این مسئله به این صورت وجود داره البته این در صورتی که هیچ مشکل پزشکی وجود نداره هیچ م... مسئله وجود نداره یا مثلا فرض کنیم که یه پسر بچه رو میان مثلا آرایشش میکنن برای اینکه برای خنده و تفریح ها لباس دکترون تنش میکنن آرایشش میکنن چیکار میکنن میبرن جلو آینه میارنش و این اینا داره ثبت و ضبط میشه و یه بعدم تگرا میکنن خوشو میاد امروز فردا در اینجا ثبت میشه این مسئله به عنوان یک کیس عمده کافی ثبت بشه بعد از این میبینیم که مسئله و نارسایی های دیگری که نرم افزاریه نرم پیش میاد خب حالا یکی چیزهایی که ما میتونیم کار بکنیم از که هم در تش دفاعی بعد در دوره سه دوره را همین موضوع نکه رو داریم در اینجا ما چون توی این بحث نرم ابزاری میتونیم نفوذی داشته باشیم یعنی ببینیم که الان تجربه شد توی آمار که گرفتیم میتونه نفوز صورت بگیره. بنابراین در این کیسا میتونیم کار کنیم در کیسه اعتیاد، میتونیم کار بکنیم چند مورد کشت اعتیاد داریم که یعنی کار کردیم یا میتونیم بگیم نجده مثبت داشتیم برای نداعت دوستان دوستان درستانو بلند کنند چی؟ سیگار بله سیگار. سیگار هم پس چی؟ سیگار یکی از امده ترین بله خب بله بله خب ببینید در واقع شما وقتی روی این چیدا کار کرده باشین یعنی تونستین اینجا نفوذ کنید یعنی تونستین نفوذ بکنید در اینجا و برنامه رو پاک بکنید یه برنامه دیگری بنویسید مفهومش اینه درست شد لذا روی این کیسا روی این موارد اگر برخور کردید هم دیگه سوال لازم نیست میتونید چگار بکنید؟ کار بکنید و این نرموزاری است مسئله مسئله اینا قربانی های هستند. یکی از بخش های دیگه ی ناخداگاهی واکنش دفاع روانی دوباره جز ناخداگاهی است که ما دسترسی بهش نداریم و بخش مهمیه این بخش رو میتونیم اسمای مختلفی روش داشته باشیم مثلا گفته میشه واکنش دفاع روانی ولی یه جای ممکنه بگن کودک درون یه جایی نمیدونم ما میگیم مادر دوم کودک درون ما رد میکنیم به دلیل اینکه عقل درست حسابی اینجا وجود داره یعنی عقل حیرت انگیزی وجود داره بعضی وقتا آدم پاش به زمین میچسبه کار کودک این نمیتونه کار کودکی باشه و عقل اینجا هست مادر دوم از این جانب میگیم و نامیگذاریم می که وچه تشابهی با مادر اولی داره مادر اولی یک خصیصه عمده داره و اون اینه که دفاع میکنه از پرزن. این دفاع چه حق چه ناحق یعنی همیشه حق با کیه؟ با پرزند ماست همیشه اینطوریه مادر این خصیصه رو داره که چه حق با فرزندش باشه چه حق با فرزندش نباشه دفاع میکنه برای همین هم هست که به صلاح پسر برحال یک مادر امام حسین دختر فاطمه زهرا و البته خوب عروسم هم هند جگر و دامادم که شمر زردوشن ای این چیز عمده است یعنی از فاکتورهای عمده است و خب ریشه خیلی از مشکلاتم در واقع همین خصلت مادره مادره که دست خودش نیست خب وجه تشابه مادر دومه با مادر اول اینه که اینم کارش دفاست و از ما دفاع میکنه در برابر پدیده هایی که باعث استراب آنی ما میشه از ما دفاع میکنه این دفاع درست غلط خلاصه صورت میگیره و ما رو از استراب... حالا چیزای مختلفی داره که چند نمونهشو عنوان میکنیم یکیش به اصطلاح نجا... رهایی از استراب‌های آنی روی ما پیاده میکنه رهایی و به صلاح کنترول استراب های آنیست جلوگیری از استراب مثلا فرص کنید که به شما میگن یه فردی هست بیکاره باید بره دنبال کار بگرده ولی تا لنگ زور میگیره میخوابه خب شما در اول اول فکر میکنید که این آدم لایبالیست بلا نمیزاره از این حرفا ولی در اصل نمیدونید که مکانیزم چیه میکانیزم بینه می که این صبح میخواد در خواب که پایشه بره سر کار یه چند روز رفته اونا دیده نه کار مشکله دوچار استراب شده دوچار استراب شده روز بعد خواسته تا اومده دوچار استراب بشه ما در سر سرکلش پیدا شده گفته که من الان درستش میکنم چنان خوابی بر او مستحل میکنه که او نمیتونه بیدار بشه ساعت هشت نه ده یازده دوازده دوازده دیگه امروز گذشته خب و اون تو خوابه ولی مادر دومه حواس جمعه که ساعت کی میشه کی خطر رفت شده. ساعت دوازده میشه بل زوره آره ظه آرهقلا از پردا میریم امروز که گذشت امروز بود گذ... پردا صبح بل فردا صبح دوباره همین آشو همین کاس هست. خب ولی او رو از استراب امروز چیکار کرده نجات داده. مثلا بچه میخواد بره مدرسه. میبینه که دستشو نخونده یا مشقشو ننوشته یا الان میره اونجای سوال میکنم بلد نیست دچار استراب میشه خب چی میشه یه دفعه آی دلم آی دلم آی دلم میفته مادر دومه یعنی میره میگه الان نگران نباش من الان درستش میکنم خب درستش میکنم یه دفعه میگه آخ دلم خودشم نمیدونه واقعا, دل واقعا دل دل درد میگیره آ دلم میفته رو زمین خلاصه اینقدر این وضعیت ادامه پیدا میکنه حالا مادر دومه حواسش به ساعت هست خب میگن خیلی خوب نمیخواد بری پلام بعد ساعت 8 میزاره یا یواشاش بازی حالش خوب میشه اینا بعد ساعت 9 میونن که از در و دیوار داره میره بالا درست شد از در و دیوار میره بالا و خلاصه اینجا به این شیوه از استراپ جلوگیری میکنه از نگرانی جلوگیری میکنه در خیلی از موارد باز با بیماری های برخورد میکنیم که همین مادر دومه ایجادش میکنه مثلا برای جلب توجه فرزن یک کودک یا معمولا اینو بیشتر یا کوهنسال ها دارن یا کودکان دارن مثلا کوهنساله میبینید بچه ها سر بزنن بچه ها سر بزنن دچار چیز میشه دیگه دچار تعلم و این حرف میشه ما در دومه میگه الان ماسا درستش میکنم خب یه دفعه میبینی که دراز به دراز شد و و از این ماجره ها دراز به دراز شدن همونطور مثلا در خانه سالمندان در این گوشه در اون گوشه بعد خب مجبور میشن چیکار کنن زنگ بزنم به این زنگ بزنم به اون همه رو که جمع کرد خب ماده دومه حواسش از همه که جمع شدن بعد در فا میشه ماده تو اینجا ماده تو اینجا و خوب میشه یا مثلا در خیلی از مواقع بچه ها هم که به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم مورد بیمهری قرار دو چاره این آرزه میشند و مادر دومه این مسئله رو براشون پیاده میکنه یا مثلا فرض کنید ما یک مورد چند سال پیش به یک مورد عجیبی برخورد کردیم یعنی موارد عجیبی ما یه دفعه دیدیم که یک کیسهایی رو به ما معرفی می‌کنن که تومور مغزی دارن اینا عمدتا ده سنین 14 15 16 ساله هستن و همه‌شون یه گزارش مشترکی دارن میگن که والدینشون میگن بچه های ما تیزهوشن جزء تیزهوشان بودن جزء چی بودن نمیدونی چه استعدادی داشتن نمیدونی پلا بودید ما در مو شدیم که در واقع یه دسته ای رو ما داریم که چرا تیسوشاتو چاره مشکل میشن چرا اینا همه با استعدادند و چاره تو مغزه شدن؟ بله خب مکانیزم بود مکانیزم بود که البته فلپور متوجه شدیم که از این قضیه هست هستر سال جواب کردیم متوجه شدیم که اینها میان رو بچه ها زیاد زیادی میان که بچه ما که اصلا دیگه در نبوغ که دیگه در دنیا تکه حالا بحثی نیست تیسوش خوب با بسیار خوب اما مانورف های تبلیغاتی روی این بچه ها خیلی گسترده میشه تا اونجا که بچه میکشه جواب تبلیغات رو میده مثلا فکر و فامیل میان خب بیا بگو بیرم بچه جون ها که اونم میتونه جوابی ملت بده که حالا همه به اون به صورت یک نابغه نگاه میکنند خب مشکلی پیش نمیاد اما یه ذره بلنگه دوچار استراب میشه دوچار استراب که شد ما در دومه میاد وسط ما در دومه میاد وسط میگه من الان برات درستش میکنم خب و مطلبی رو که درست میکنه در واقع اینه که ما دیدیم که اینا در درشون به صورت اشتراکی مثلا تمور هست و در یه سری دیگه چیزای دیگه هست حالا برای این موضوع رو بدونید که این میسازه من توی هستری کم مثال میزنم تا شما بدونید که بله واقعا بیشتر قضیه در اینجاست و این توی موردی است که توجیه من توجیه من چندتا تا مثال میزرم که با این بتونیم چیزش بکنی. بکنیم مثلا مثالی داشتیم مبریم برای اینکه فرزند در محیط خونه در جایی مسائل پیش میاد ما میگیم که دیگه نمیخوام بشنوم. دیگه نمیتونم برم دیگه نمیخوام برم دیگه از اینجور مسائل چقدر من پای پایین سنگ زرد پشورم دیگه دستام هم خب اتفاقی که میفته کافیه که این اطلاعات از اینجا بگذره از فیلتر عقلی بگذره یعنی عقل متقاعد بشه که آره با این واقعا دیگه نمیتونه با این دستاش کار کنه در حالت عادی این عقل میتونه که ما اینو میگیم منظورمون این نیست که دیگه واقعا دست ما کار نمیکنه نمیخواد کار کنه اینه که خسته شده ولی کافیه که در یک موردی عقل متقاعد بشه که ما واقعا دیگه یارای کار کردن نداریم بلافاصله فاصله وقتی هم به این بخش ناخداگاهی بیاد مورد تایید این برنامه اینجا قرار بگیره مادر دومه هم روش بلند میشه که بله بر حسب دفاع بلند میشه و از اینجا به کاربود ذهنی البته به این مرکز اراده و اجرای مرکز بعد به کاربود ذهنی، کاربود زهنی اینو چکار میکنه؟ دستور میده است اون صحبتی که توی کاربود زهنی با هم دیگه داشتیم چیکار میکنه؟ اینو پیاده میکنه و دستور میده که دیگه خب دست حرکت نکنه دست بینه که دیگه حرکت نمیکنه یا اینه دیگه نمیتونم برم دستور میده و میبینی که از یه جایی به بعد کاربود زینی دستور میده که گزارش رد و بدل نشه از اونجا به بعد فلج هیستریک دیگه نمیخوام بشنوم دیگه نمیتونم بشنوم. کریه هیستریک دیگه نمیتونم ببینم کوریه هیستریک اتفاق میفته خب بعد در مورد اینه که همچین مسئله ای هم در اینجا بعضی موقع از اینجا مسئله میاد اطلاعات بعضی موقع وقایه در اینجا پردازش میشه به این داده میشه خب پردازش میشه فرد الان در استراف قرار میگیره این بچه و این میگه من درستش میکنم از اینجا به بعد دستور میده که ما باید برای این توجیه درست کنیم یکی از توجیهاتی که درست میشه میبینید که این مسئله از حالا به بعد این توجیه داره میگه من دنیا رو با نبوغم میگرفتم حیف که این شد الان والدین اونا میگن مثلا خیلی میگن که اگه شما برقور کرده باشین کسایی که دوچاری مسئلشون هم پرزندانشون هر دست دادن بچه های ما دنیا رو میگرفتن با نبوغشون ولی حیف که این مسئله اومد رو نذاشت. و در واقع این قضیه توجیه من حالا ما مرتبا اگر بخوایم واقعا تحقیقات دامنه داری بکنیم به نتیجه میرسیم ممکنه برسیم که خیلی از مشکلاتی که انسان دچارش میشه بیماری مسائل در واقع میتونه از توجیه من باشه میتونه از این بخش باشه خب ها به یه تحقیقاتی نیاز داره که در موردش و بتونیم اصار نظر نهایی بگوین. یک مورد دیگه در اینجا در واکنش دفاع روانی که اهمیت داره انتقام جوییه. جانم جان. همش یک چیز مثبت داره متکامل سازی. بقیه‌اش همش همینطوریه. یه چیزی داره متکامل سازی که احساس پست رو تبدیلش میکنه به یک احساس بالا. بالاتر خودش. ولی عمودتنش به این مسئله از و افراد معمولی تحت این تاثیر ما در دومه قرار میگیرند مگر اینکه حالا طبق قضایهی که وجود داره کنترل این بخش در دست گرفته بشه کنترل این موضوع در دست گرفته بشه در مورد انتقامجویی بعضا در خلال روز با یه بچه دعوا میشه مرد اخ قرار میگیره ما دومه هم در صدد انتقام برمیاد میگه تو رو دعوا کردن حالا ببینیم که من چه انتقامی میگیرم انتقامی که میگیره اینه که شب نصف شب که شد خب یک دو شگ بردن و دو شگا بردن و اینا رو به رو دست والدین میذاره خب حالا امشب پردا شب پس پردا شب یک ماه یک سال دو سال، سه سال همینطور اینو ادامه میده انتقامجویی صورت میگیره در این مسئله هم همینطور که میبینید هیچ چی نیست جزم بحث انتقام گرفتن و در واقع جبران و تلافی کردن بازمیدین که فرد هیچ اشکالی هم نداره هیچ اشکال از نقطه نظر پزشکی واقعا نداره و بعد هم امدتاً ممکنه اینا در یه ساعت به خصوصی مثلا فرزن این کار انجام بشه خوب کسی اینجا داریم که با شبدراری کار کرده باشه شما خوب نتیجه خوب شده بسیار خوب پس حالا اینجا زمین که این مطلبم کردیم این کی ها را هم که به این شکل است ما میتونیم کار بکنیم یا حالا در مورد کس های دیگه ای که بازم در اینجا دریان پیدا میکنه در اینجا هست کس که هم است هم میتونه انتقامجویی باشه در دو کس خودش یکیش نرمبزاری این که مثلا فرص کنیم که ببخشنیم که مثال رو میزنم میروند یه بچه خرابکاری میکنه روی حالای فرصی جایی و والدین حالا یا به طبع نجس کردن یا به طبع اینکه نمیدونم حالا باید یه کاری رو دستشون افتاده با بچه دعوا میکنن و بعد از این مسئله و اینکه این کار چه کاری بود که کردی منظور والدینی بود که این چرا اینجا این کارو کردی ولی دو تا اثر گذاشته میشه یکی روی نرم ابزار که چرا این کارو کردی این کارو چرا این کارو کردی یعنی با خود عمل مثلا تقابل ایجاد میشه و لذا از اونجا به بعد یو بوست مزبن اتفاق میفته این نرم افزاری اون است یکی اینکه دعوا که میشه اتفاق دیگه میفته عدم کنترل عدم کنترل جزء موارد انتقام جویه. ما که داشتیم که در سن بالا در حالا جوونی شده ولی این مشکل رو وزن داشتن و حالا ببینید چه موزل بزرگی پیش میاد برای یه جوانی که میخواد بره مدرسه بره دبیرستان بره بیاد و به این عدم کنترل چه موزل بزرگی میتونه ایجاد کنه زمینی که همه همه چی هم سالمه هیچ مشکلی هم وجود نداره این هم زمون شبدریه خب من یک چه میبوش کنم. بله و این رو بدید این گزارش جالبه این گزارش رو که خب که یک مورد چهل سال یعنی از بچگی دیگه این ساله. این ساله. بله سال این مشکل بعد من که الان میدم که این گزارش جالبه اینو این گزارش رو گوش بدین بفرمون من با این خانم تقریباً حدود دو شاید ده سال بیشتر این مشکل رو داره موقعی که باهاش کار کردم اتصال دادم و فرادرمانی و تشششو یه شب تمام لباس و رخت خوابش خیس شده بود در صورتی که الان این شخص دامادم حتی داره عروس داره های. ولی این مشکل هنوزم ادامه داره و اتفاقایی که از اون سوالهایی من الان پشیمان به خاطر همین که در مورد ایشون من همینطور دارم کار میکنم و دائما هم این مشکل ایشون داره و نمیدونم دیگه خودم چی کار این کنم این حالا بر چه اساسی ایجاد شده ولی کارو انجام میدین فرضت فرمودین که 10 سال اینجوری شده باشه شاید شاید به اون به این مورد نمیخوره ولی ممکنه علت های فیزیکال فیزیکی وجود داشته باشه که ولی کار بکنید حتما کار بکنید ببینید که نجه نهاییش به چطوری ولی استاد آزمایشش هیچ چینشون نداده اگر چینشون نمیده اگر چینشون نمیده جز میاد جز این چیزایی نرم مبذاری منطقه کار بکنید حتما اثر بحش خواهد بود ممنون حتما ارزی میگم دیگه حالا ما چون اجاز زیاد سوبره چیز تشش اتفایی نمی کنیم ممکنه به اونم ارتباط داشته باشیم اعتیاد که الان توضیح دادیم دیگه اعتیاد انتقام جویی بعضی موقع ها میبینید که جز چیدهای مادر دوبومه اعتیاده فرار به یه شکلی میخواد فرار کنه مادر این اینجور مسائل رو هم مثلا توصیه میکنه به نوعی به نوعی انتقام جویی میتونه باشه یعنی برای عذیت آزار والدین میتونه باشه همه اینا امکانش هم لجبازی نمیدونم حالا خب اینا هر کدوم یه صحبتهای خاص خودش هم داره خب باید تششد دپایی میخواد دیگه رفت تو پاز تششد احتمالا هم در همون جا به همون مسئله ارتباطه نه نه نه این مخصوص انسانه این فقط انسانه که من مدافع ببینید من مدافع این من مدافع چون ما منهای متعدد داریم این من من مدافع یا مادر دوم یا واکنش اتفاع روانی یا هر کدوم از این صحبتها رو که بتونیم روش داشته باشیم خب من از باز کردن این بخش این چندتا این صحبت رو که می خیلی مفصله در مورد جلوگیری از سرابونا بحث های خیلی خیلی مفصله ولی ما فقط از این زاویه اشاره کردیم که با کیس هایی که ممکنه رو به رو بشیم بیشتر از این زابیه مد نظرمون بود که با کیس هایی که ممکنه رو به رو بشیم هیستریكا به بیماری هیستریک این دانشابت داری نمیدونم این قضایا رو در واقع بیشتر باش آشنا بشیم نه اگه بخوام راجع این مسئله صحبت کنیم که خوب خیلی مفصله خب تا اینجا اگه سوالی هست سالم بررسی بکنیم بریم ادامه جانم جانم تلقین ببینید تلقین میخواد بیاد اطلاعات رو از اینجا از فیلتر عقل عبور بده بیاد از این نرمفزار اینجا عبور بده برسونه به اینجا البته این تعریف ماست تعریف خود ایپنوتیزم اینه که اطلاعات رو از این عبور کنه به اینجا برسونه کار تمومه ولی اینطوری نیست چون میبینید که یه سری تلقین نپذیرند تعریف تلقین ناپذیری چیه؟ تلقین ناپذیری بعضیا ها میخواند یعنی این فیلتر عقلشون متقاعد شده که مثل همین ما هستیم میخواییم نمیتونم ارتباط به قرار کنیم پس اینو متقاعد کردیم اما به اینجا میرسه اینجا بعضی ها نرمبزار اینجا مقاومت میکنه و عبور نمیکنه از اینجا باید به اینجا بخش اجراست بخش اراده و اجراست باید برسه اونا میگن به این برسه کار تمومه ما میگیم نه خیر باید به اینجا برسه لذا تعریف تلقی نافذیری میشه که عدم عبور از ناخودآگاهی میشه تلقی نافذیری بنابراین با تلقین مسئلهی که هست همین کار میقاد انجام بده یه جوری برسون اینو متقاعد کنه که با با این سیگار بذار کنار ولی نمیتونه چون به اینجا میرسه دیگه نمیتونه این هم متقاعد کنه به اینجا میرسه نمیتونه نمیشه این مسئله و یه درصد کمی هستند که برنامه که اینجا ریخته شده اجازه عبور میده قفل نیست بیش از 90 درصد افراد قفله و نمیتونن این قفل رو با صرفاً مسئله تلقین بشکننش درست شد وقتی میگن تلقین ناپذیر یعنی قابل هیپنوتیزم نیست دیگه شنیدین که تلقیم پذیر و تلقیم ناپذیر؟ فقط یه درصد کمی هستن که تلقیم پذیر هستن خب، سالی دیگه اگه هست، سوالی نداریم؟ چه جالب، این که خب، این خیلی خوبه که چی رو؟ در چه موردی؟ خب بعد بحث شبدری و اینجوری همون فرادرمانی رو ارتباط برقرار می‌کنیم ادامه میدیم اگر نتیجه نگرفتیم در انتها تجشش دفاعی هم تست می‌کنیم اگر نتیجه نگرفتیم بله بله بله ادامه میدیم ادامه میدیم ببین نتیجه خوب سوال بفرمایید میکروفون اونجا نیست سالتون رو بفرمو و هم میکروفون رو میدیم خدمتتون بیماری شک و تردید بیماری شک و تردید چیه؟ منظورتون پارانویده، بدبینیه؟ بله بیماری بدبینی از جز ذهنی پارانوید شک و تردید بله اسکیزوپرنی خوب بدبینی یا پارانوید هفرنی، کاتاتونیک، نمیدونم این ها که از این مسئله توهم فسکیز و فرنی یا همونه که گفتیم توهم خب توهم این هم همونه دیگه بدبینی هم جزه توهمه دفاعي دفاعی البته فرادرمانه یا دیگه این تششوه دفاعی، این بحث ذهن این موضوع که اینجا الان هست بحث ذهن. و ذهن با تششعه دفاعی خوشبینی چطور؟ خوشبینی؟ نه اون اشکال نداره، اون چیزی نمیخواه به سوال داری؟ سوال نداری؟ میکروفون رو من بدم که دوستان که چی رو؟ غذاوت مورد فرهنگیه، بینشیه، عادتیه اونا یه چیدهای تربیتیه یه مسئول بینشی امدتاً یعنی تفکر منفی بینشیه دیگه اونا بینشه دیگه یکی و شده. شده دیگه. به هر حال می‌بینید تفکر منفی فرد رو از ادامه حرکت باز می‌داره، از فاعلیت باز می‌داره، از پیگیری باز می‌داره می خب هم اینا شکستشو فراهم میکنه دیگه یکی که خوشبینه دنبال میکنه، میره، نمیدونم چیکار میکنه بلاخره اون پیگیرش خودش موفقیت میاره نه اینه که حالا اون تفکر مثبته نمیدونم یه کار انجام بده خود اون زمین موفقیتش فراهم میکنه جان اشخواه مرزی خدا بده از این مرزا بده <تصفح> سوالشون اشخواه مرزیه اشخواه مرزی، ببینید حالا البته در ترم بعدی راج به این مسائل خورده بهتر میتونیم صحبت بکنیم مثلا این جاست که باز این خودش قضیهشی مقداری به این ناخودداگاهی ارتباط داره به این صورت که مثلا فرد در ناخداگاه تکیهگاهی داره مثلا به والد یه تکیه گاهی داره بعد میاد یواش بل اجبار از خونه جدا میشه میاد میره در مثلا دانشگاه میره در دبیرستان میره دانشگاه یواش یواش تکیگاه ناخداگا با خبر میشه که این تکیگاه رو چیکار کرده از دست داره میده داره دور میشه به فکر تکیگاه جدید میفته تکیگاه جدید خیلی سری این تکیگاه رو پیدا میکنه چون ناخداگا و اینا همه مادر دومو همه دارن صحبتش میکنن یه دفعه این مسئله بسیار سریع اتفاق میفته چون کمک مادر دومه تو این مسئله خیلی موثر واقع میشه درست شد یا نه بعد این مسئله منجر میشه به پیدا کردن تکیگاه جدید ادامه پیدا میکنه بعد میاد توی زندگی به مرز این که احساس بکنه که خویی تکیگاه مثلا کاملا مستقل شده که این به مرور زمان اتفاق میفته یه دفعه نگاه میکنه یه نفر بقید دستشه میگه این کیه؟ خب این از کجا اومده راسینگ؟ این چی بوده که اومده؟ یعنی زمانی که اون مسئله از اون تو حل و فصل بشه این طرف قضیه مسئله یه دفعه پاک میشه یه دفعه تحت چیز قرار میگیره حالا در این خصوص عوامل و مسئله بسیار زیادی هست که میتونه مورد بررسی قرار بگیره که در واقع ما یک همچین امچین رو داریم که در این جهاد و در ناخوداگاهی شکل میگیره لذا پروسه خودشو که طی میکنه مسئله به صورت دیگه است حالا اینکه شما فهمودین عشق مرضی یک بخشش نرم افزاری است دوباره در نرم افزار داره دنبال میشه ای حالا نمونه گفتیم حالا تا بعدا بیشتر راجمی قضیه صحبت بکنیم ببینید به طور کلی موضوع حافظه برمیگرده به ارتباط ذهن و جسم ارتباط ذهن و جسم وقتی ارتباط ذهن و جسم برقرار باشه مدیریت حافظه خاطرتون است راجب طرز کار رسلا کار کاربود ذهنی صحبت کردیم و دیدیم در اونجا مدیریت حافظه داریم درسته یا نه؟ مدیریت حافظه یک مدیریتی است که میاد از توی فایل های مختلف اطلاعات رو چیکار میکنه؟ اطلاعات رو میکشه بیرون اما مدیریت چی اطلاعات؟ حالا اینا که از فایل اومده بیرون بریده بریده بریده است اینا رو چیکار میکنه؟ کنار هم میچینه لذا فراموشکاری میتونه یک مشکل ذهنی باشه یک مشکلی است که مربوط به کاب ذینیم. بعضی موقع واجه ها رو نمیتونیم یعنی چیزها رو نمیتونیم از توی فایلا. اطلاعات رو از اطلاعات ازفایللا در دربیرییم این مدیریت حافظه اشکال داره. بعضی موقعات چیدمان ما نمیتونیم بکنیم. یعنی اطلاعات رو داریم ولی نمیتونیم کنار هم بچینیم این مدیریت چیدمان اطلاعات حالا در ترم هفت در مورد شناخت نفس نفسو، بخش های مختلف این قضیه جان و نفس و روح الله و مرکب و نیروی حیات و شور حیات و اینها در توی نفس میبینیم که ما چندین نوع عقل داریم چهل نوع و بیش بیشه اینا خودش وقتی خورد میشه خیلی خیلی زیاده و هر کدون از اینا نرموزار هایی هستن که چگونه میتونن بیان این کارا رو انجام بدن بنابراین این مسئله حافظه مغز باید سالم باشه ممکن است ضربه این بخوره مثل آنته میمونه که تنظیمش با ماواره و هم بخوره تقویت این قضیه یکی از چیزایی که میتونه کمک بکنه همین میزان بودن ارتباط جسم و ذهن و اینا با هم دیگه ارتباط کالبودی میتونه به این مسئله کمک بکنه توجه فرمودین این مسئله صرفا مغز باید سالم باشه ذهن هم که هست ارتباط باید داشته باشن با هم دیگه میکروپون هنو در اونجا به اونجا اون نرسیده میکروفون اگه میشه بدین خدمت سرکار خانم یه توضیح اینجا داشتیم در مورد جویدن ناخون دستونو بلند کنین لطفا توضیح را راجبه جویدن ناخون راجب تیک عصبی جویدن ناخون موردی داشتیم که خوب شده بود بله کار بکنید حالاحق گزارش جا متش ببرید مال گروه صبح بوده ببش ب ا میم اینه که وقتی عصبی میشن زیاد میخورن اینم واکنش دفر دفع بله بله ما در دوه این ما در دومه است که میخواد هوا او رو پرت کنه بکشونه یه جای دیگه مونته ها حالا روی محس روی ئله یکی از مواردی است که میاره فرد و. منعرفش میکنه به این سمت مشغولش میکنه به غذا خوردن و از این بابت سرش گرم میشه. ببخشید وقت برای اینکه با این مادر دوم مقابله کنیم چیکار باید بکنیم؟ بله در مورد این مسئله خوشبخت کنه. خوشبختانه, خوشبختانه شناختن این بخش و شناختن ترفندای مادر دوم خیلی میتونه کمک بکنه به تسلط ما بر اون. خیلی از حرفهایی که ما میزنیم حرفهای خودمون نیست. بعضی موقع‌ها یه حرفایی میزنیم به ما میگن اینا رو گفتین و ما اصلا تعجب میکنیم که کی ما اینا رو گفتیم. نگفتیم ما. به شدت انکار میکنیم ولی این حرفها رو ما زدیم و کار اینجاست. بعضی موقع‌ها صحبتایی که میکنیم در واقع با اون صحبت‌ها ما استراپ‌های آنی رو چکار میکنیم، مهارش میکنیم. یه درصدی از حرفا حرفایی ما نیست مثلا میگن که فرزند این آقا این دوستت این نمیدونم با جناقت نمیدونم این خوب پیشرفت کرده ها ما فورا در میمیگیم که حتما دوزی کرده حالا ممکنه دوزی کرده باشی ولی ما هیچ دلیلی نداریم مثلا میگن که این جاریت خیلی خوشکله ها میگه رو که نخوردی نکوردیکه <تصفيق> و از این چیزها بخش مثلا خیلی از صحبتهایی که ما داریم در طول روز صحبتهایی که داریم در طول روز همین ما در دومه در واقع داره صحبت میکنه به جای ما ولی وقتی اینو میگیم جیگرمون آی خونک میشه و, و استراب ما در اون لحظه جلوس میشه؟ گرفته میشه استراب ما رو کنترل میکنه ماهار میکنه خب شناختن ترفند ها شناخت ترفندها خودش میتونه خونسا بکنه یعنی دستش رو میشه بنابراین تو این رابطه بحث تعالی یکی از کارایی که باید انجام بشه اینه که ما دقیقا اون چیداری که میگیم حرفهای خودمون باشه واکنش با این مادر دومه نباشه این یکی از اون مقدماتی هاش اتفاقا و جانم بفرم ببینید استرابی که بله ما در دومه فقط کنترلش میکنه آزمودم عقل دوراندیش را بعد از این دیوانه سازم خیش را ما یه عقلی داریم از اون گفتم سی چههل نو بیشتر یعنی اون هم تعلیل بشه به صد نو عقل میرسه یه عقلی هست که مرتب داره چگاه میکنه آینده رو میبینه با اطلاعات درست و غلطی که داره هی آینده رو میبینه پردازش میکنه بعد از اینه پردازش کرد به ما یه نتیجه میده نتیجه که میده میبینیم که مثلا پارسی رو که داره میده پارس اینه که دورنما خوب نیست آیا ممکنه اینو رو میشه آی مم... و این از اینجا استراب نگرانی میاد و جان ببینید شما یک موقع میخواهید که از این نقطه نظرای ما مختلف نگاش میکنیم مثلا فرض میکنیم در ترم بعد نگاه میکنیم اینجا مثبت، اینجا منفی اینجا آرامش اینجا استرام میگیم اگر در تحت لوای شبکه مثبت باشیم نتیجهش باید آرامش باشه خب؟ اگر در تحت لبای شبک منفی باشیم نتیجه استراب ترس ناامیدی و همینطوری بیایم پاین حزن و اندو اینا رو بگیریم امکان نداره کسی اینجا باشه به اینجا برسه این اولیا الله لا خوف علیهم ولا هم یهزنون حالا استراب و ناامیدی و اینا از حزن و از ترس ترس هست پوسترش چیز میاد اون میاد این میاد این می این دوتا مادر بقیه هستند. خب اگر از این زاویه بخوام نگاه بکنیم به قانون میرسیم این میشه قانون سلیب حالا چرا قانون سلیب؟ دور بعدی راجبش صحبت بکنیم چرا اسمش قانون سلیبه خب اگر از این زاویه بخوام، وقتی به شبکه مثبت میان باید نتیجهش آرامش باشه بله سرتون میاد تو خواب ولی بله خب شما اطلاعات و آگایی دارین که به شبکه منفی اتصال هست درسته قطع اتصال از شبکه منفی مال دوره چهاره و بعد یک موضوع مهم اینه که خودتونم البته به اسم بدین براتون کار میکنی ولی بله خب بحثش مال اون دوره است، بحثش مال اون ولی الان اسم بدین براتون کار میکنی اون مسئله نیست از میکنم خدمتون این شمای دو اختیارتون در وهله اول اما اگه کمک بخواید کمک هم میتونید برای ما بنویسین قطع اتصال از شبکه منفی درست شد بنابراین یک بار ما اینجا از بود بینشی با هم صحبت کردیم یه بار از بود ارفانی و اصول این ور با هم منطبقه خب مونتا اونجا وقتی میگیم یه عقلی هست که این کارو میکنه اون عقل از کجا فرمان میگیره بعد اینجا میاد که ماجرا بله یه جایی بهش داره تغذیه میکنه اطلاعاتی میده ماجراهایی رو داره دنبال میکنه که باعث استراب و نگرانی او میشه درست شد خب جانم ببخشید یه وقتی پیش میاد که نفر کلاً آرامش داره ولی به طور مخطئی دوچاره ترس و استراب میشه اونجا چجوری که مثبت و منفی با هم ببینید شما دارید میفرمایید که آرامش داره ولی مخطئی استراب میاد دوچاره خب، ترس میشه. این مسئله اینجاست که این شیفتش از این ور به اون ور در مورد افراد یکسان نیست اگه این خیلی محکم باشه هیچ عاملی نمیدونونه از اینجا پیداش به اونجا اگه مثلا آرامش داره یعنی یه لحظه میره اونور یعنی انقدر نقص داره در حد منطقه نه افراد معمولی کمتر شده یعنی یه زمانی باید بیاد که اون اصلا از اینجا تحت هیچ عنوان و بانی از اینجا به اونور نره خب چی خوابت خودسازی خودشناسی و ایناس دیگه بحث همینه دیگه یعنی تشرش دفاعی هم لازم اینجوری نه این نظر رفته به تشرش دفاعی نداره این به این ترسوفوبیا شی... رو شما گفتین تشرش شو دفاعی بقید. ببینید این فوبیا نیست چرا دقیقا مشکلی که هست فوبیا ببین پس شما دارید راجع به کسی صحبت میکنید که مبتلا به فوبیا بله ولی خب مختصیه همیشگی نیست همه جا نیست ببینید در یه شرایط خاصی پیش میاد ببینید مثلا شما؟ تو هواپیما، یه نفر، یا من خودم تو هواپیما مثلا دچار تفش قلب میشم ولی خب آدم تو جاهای های دیگه مشکل ندارم ببینید اینه که خدمتون رو میکنم خب، اگر این تئوری حالا ممکنه در عمل نداشته باشیم همچین کسی این تئوری کسی که اینجا ساخته شده باشه تو هواپیما تو هر جایی از اینجا به اینجا نمیاد. حالا چرا نمیاد؟ خب چرا نمیاد خیلی بحث هست خیلی صحبت هست. چرا نمیاد حالا انشالله بعدا صحبت میکنیم کنیمیم منظور عملاته در دورهای بعده. اینا رو متوجه میشیم که چرا بعد چگونه؟ دیگه برق از بحث های مفصلی داره. راجب پایانامه دوستان یه لحظه من قبل از که دوستان تشریف برند راجب من توضیح بدم که یه پایاننامه رو به من دوستان اگر لطف بکنن، خیلی ممنون و منشکه خب توجه بکنید یه تجربه هست که بینخواهم شما این تجربه رو با پایاننامه داشته باشین اجازه بدین اجازه بدین البته الان نمیتونیم یه تجربه بکنیم روی موردش اول به عرایز من توجه بکنی این پاینامه رو خونه رو دیوار با یه پونه چیزی به دیوار بزنید بعد در فواصل مختلفی حالا برسگی افراد مختلف افراد مختلف حالا برس به چشمشون دوربین نزدیک نزدیکبینه نمیدونم چیه حالا فواصل مختلف میتونم بشنن میتونیم یه فاصله معینی رو بگیم هر کسی اونجوری که میتونه بشینه و پای نامه رو ببینه ابتدا نورو کمتر در نور پایینتر این پایان رو فقط نگاه میکنید همون شاید کار خاصی نیست و بعد ببینید چه تششعاتی داره تچششوعاتش رو ببینید تغییرات آرم عکس نوشته امضا تغییراتش مشاهده بکنید که چه تغییراتی داره دیگه نگاه بکنید ببینید که یه چند دقیقه روش کار بکنید دیگه یه دقایقی در واقع باش ارتباط به قرار نگاه دارید این یک موضوع اجازه بدین ببینید هر چی میخوایید بذارین اونش دیگه دست خودتون با نور شم یا مشعل یا <تصفيق> هر چی. خوب نه، اینو ادامه بدین، هر بار ادامه بدین یه چیزی میشه یعنی فقط یک چیز نیست، هر بار ادامه بدین یه چیزی میشه حالا ادازه بدین یه آزمایش دیگه این پایان نامه توی پاکتیش که مثلا افراد ندونن توش چیه خب، شما اینو به افراد مختلف بدین، دستشون بگیرن ازشون گزارش بخواید بگید اینو بگی بگید دسته بعد هر احساسی داشتی بعداً به ما بگو خب بعداً می‌بینید که میگن که آره جریاناتی اومده مسائلی اتفاق افتاد خب البته خودتونم می‌تونید این تجربه رو بکنید همین الان اگه میخواد میتونیم این تجربه رو با هم داشته باشیم برنامه‌تون رو دست می‌گیرید الان <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> به سرتون مگه شاگردید یا نیست که خب دوستان عزیز خوش خب شروع کنیم یا نه نه نه نه همینطوری دستتون راحت باشین راحت باشین همینطوری جلوتون جلوتون خوش خب شروع میکنیم شروع چشما بسته چشما بسته همه حواستون رو بدین به شروع بکنیم خیلی ممنون خیلی متشکل دوستانی که اتوال متوجه شدن دستون رو بلند کنند بله بله خب حالا البته خونه بهتر میتونید چون اینجا هم سر و صدا بود و اینا لطفا اجازه بدین حالا آزمایش دیگه میتونید ترتیب بدید آزمایش دیگه اینی که میتونید فرزن یه نفر مریضه یا یه نفر مثلا این رو شکمش، رو شکمش سرش، رو سرش بذارین ببینید که چه دریا فقط از فرد گزارش بگیرید نگیدین چیه اطلاعاتی ندارم فقط ببینید که چی متوجه میشه ساقی ها چه بنشستی؟ خوم می به جوش آمد در ها که پشت در به حوش آمد همه رو به خدا میسبریم خیلی ممنون خیلی ممنون، خیلی ممنون،